خدای یگانه مهربان سلام با یک افسانه دیگر با شما همراهیم اونوارم افسانه امشب هزار افسان رو تا پایان بشنوید زن کنچکاف شد و کلیدها رو برداشت و برخلاف گفتی شوهرش در اتاق حشمی رو هم باز کرد با باز شدن در اتاق زن از ترس بر جای خودش میخکوب شد و با قلبی لرزان به دیوی که در اونجا بود سلام کرد دیو خندید و گفت اگه سلام نمی کردی مادرت رو به ازادت میشوندم، حالا حالا زود از اینجا برو. زن با ترس و قدم های از اتاق دیو خارج شد و وارد اتاق رو می شد این چه که شنیدید بخشی از افسانه ایرانیه دختر هفت فتیر خور بود گرفته از کتاب قصه ها و باورها نوشته ی آقای دکتر احمد بیانی این قصه رو تقدیم کنیم به همه شما که عاشق افسانه. ای در روزگاران قدیم زنی زندگی میکرد که سالها قبل شوهرش را از دست داده بود و با فرزندانش که چهار پسر و یه دختر بودن زندگی میکرد تنها دختر خانواده هر روز هفت نون فتیر میخورد و اگر روزی لغمی از یکی از فتیرها کم میشد اونقدر گریه میکرد تا مادرش مجبور میشد یکی دیگه براش بپسه یه روز وقتی برادر کوچیک دختر از مکتب به خونه اومد خیلی گرستش بود و چون مادرش غذای آماده نکرده بود به سراغ هفت فتیر خواهرش رفت و چند لغم از اونا رو خورد ساعتی بعد دختر به خونه اومد و چون گرستش بود رفت سراغ هفت فتیرش و وقتی دید یکی از فتیرها کمی ازش خورده شده بنا یک گریه و زاری رو گذاشت مادر هر چی گفت که برادرت گرسنه بوده و توی خونه غذا نبوده به گوش دختر نرفت که نرفت و دختر همچنان گریه و زاری میکرد در همین موقع پسر وزیر از اون حوالی میگذشت صدای گریه دختر رو شنید جلو رفت و در زد مادر رفت و در رو به روی پسر وزیر باز و وقتی پسر وزیر رو دید از خوشحالی نمیدونست چی بگه و زبونش بند اومد پسر وزیر گفت من از این حوالی میگذشتم صدای گریه ای رو شنیدم چه کسی داره گریه میکنه؟ مشکلش چیه؟ زن به تندی جواب داد این, این دخترمی این که گریه میکنه پسر وزیر با تعجب پرسید دخترتون؟ برای چی گریه میکنه؟ چی میخواد؟ زن به جای اینکه به یه دخترم روزی هفت فتیر نون می‌خوره گفت گفتم. دخترم روزی هفت کیلو پنبه می‌ریسه و چون امروز پنبه توی خونه نبود که اونارو رو بریسه گریه می‌کنه. علت گریش همینه قربان. پسر وزیر وقتی این حرف رو شنید. از دختر خوشش اومد و تصمیم گرفت از اون خاستگاری کنه. و چند روز بعد جشن عروسی پسر وزیر رو دختر هفت فتیر خور شد و اونا زندگی مشترکی رو با همدیگه شروع کردن زی پسر وزیر آزم سفر به زنش که همون دختر هفت فتیر خور بود دست کلی دیداد و گفت: بعد از رفتن من در هفت اتاق رو باز کن و مشغول ریسیدن پنبه ها باش تمام پنبه ها رو بریس ولی ولی اتاق هشتمی درش رو باز نکن که در اون خطر مرگه فهمیدی زن دست کلید رو از شوهرش گرفت و اونو روانه سفر کرد مدتی از رفتن شوهر گذشت زن نگران شد و با خودش گفت آه خدایا مادرم چه اشتباه بزرگی کرد بجای اینکه بگه هفت فتیر میخورم گفت روزی هفت کیلو پنبه میریسم ای خدا حالا چیکار کنم به اومدن شوهرم چیزی نمونده امروز یا فردا برمیگرده در حالی که من هیچ پنبهای نرسیدم دختر از فکر ریسیدن پنبه رها شد و به یاد فطیر افتاد خمیر درست کرد و به ایوون خونه رفت و اونجا نشست کمی از خمیر رو بر روی راست و کمی دیگر رو بر شونهٔ چپ و بقیه رو بر روی دو خودش گذاشت دهنش رو به ترتیب به این طرف و اون طرف می برد و ضمن خوردن خمیر این شعر رو می خوند. خاجه به دروازه رسید. نمیدونم بخورم یا بریسم. از طرفی پسر پادشاه استخون توی گلوش گیر کرده بود و تلاش حکیمان برای درآوردن اون بینتیجه مونده بود. زن رو از پنجری اتاق خودش دید و از این حالت و حرکات زن وزیر چنان به خنده افتاد که استخون از گلوش بیرون پرید به پادشاه مژده دادن که پسرش خوب شده و استخون از گلوش بیرون پرید. پادشاه به سراغ پسرش رفت و ماجرا رو از اون پرسید پسر هم گفت که از حرکات زن پسر وزیر خندش گرفته و استخون از گلوش بیرون پریده. پادشاه بلافاصله زن وزیر رو به حضور طلبید و خاص به اون انعام ارزشمندی بده. زن پسر وزیر گفت: جناب پادشا من هیچ انعامی از شما نمیخوام. فقط اه و دستور بدین تمام پنبه های هفت اتاق ما رو تا اومدن شوهرم بریسن و به نخ تبدیل کنن پادشاه گفت این که کاری نداره همین الان چند زن رو میفرستم تا تمام پنبه ها رو بریسند به دستور پادشاه چند زن پنبه ها رو و خیال زن وزی رو از این بابت راحت کردند. زن کنجکاف شد و کلیدها رو برداشت و بر خلاف گفته شوهرش در اتاق هشتمی رو هم باز کرد. با باز شدن در اتاق هشتم زن از ترس بر جای خودش میکوب شد. و با قلبی لرزان به دیوی که در اونجا بود سلام کرد دیو خندید و گفت <تصفيق> اگه سلام نمی کردی مادرت رو به میشوندم. می حالا زود از اینجا برو <تصفيق> زن با ترس و قدم های پرشت از اتاق دیو خارج شد و وارد اتاق روبروش شد در اون اتاق دیگه آبی در حال جوشیدن بود زن انگوشش رو توی آب فرو کرد و دیگ از جوشش افتاد زن بعد از اون وارد اتاق مجاور شد از دیدن منظری که میدید نزدیک بود نقش بر زمین بشه در اونجا آدمهایی رو دید که با قول و زنجیر از دیوارهای اتاق آویزون شده بودند زن به سرعت از این اتاق خارج شد و باز خودش رو در مقابل دیو دید دیو پرسید چکار کار کردی؟ زن جواب داد کاری نکردم دیو به اتاق مجاور نگاهی انداخت و وقتی دید آب دیگ از جوش و خروش افتاده از زن خواست که انگوشش رو به اون بده زن از ترس انگوشش رو جلو برد و دیو انگوشته اونو قطع کرد و توی آب دیگه انداخت آب مجددن به جوش اومد زن از اتاق خارج شد و در رو بست و به منزل اومد سر وزیر از سفر برگشت و از دیدن هفت اتاق پنبه که ریسیده شده بود خیلی خوشحال شد. و از همسرش درباره اتاق هشتم پرسید زن اول انکار کرد و گفت: نه، من به اونجا نرفتم. فقط در هفت اتاق رو باز کردم، همونطور که خودت گفته بودی. ولی شوهر از بریدگی انگشت زنش موضوع رو فهمید و عصبانی شد که چرا زنش بوند دروغ میگه زن هم وقتی عصبانیت شوهرش رو دید همه ماجرا رو برای اون تعریف کرد پسر وزیر نزد دیو رفت و از اون خواست زنش رو به سبب خیانتی که کرده به سزای اعمالش برسونه از طرفی به زنش گفت دیو هفت شبان روز میخوابه و هفت شبان روز دیگه بیداره. و با این بهانه که دیو الان در خوابه زنش رو فرستاد به اتاق هشتمی. دیو که در انتظار زن بود با یه حمله زن رو با قل زنجیر کشید. چند ساعت بعد پسر وزیر از کار خودش پشیدون شده با خودش گفت. چه اشتباه بزرگی مرتکب شدم زنم چه خیانتی به من کرد اون فقط از ترس به من دروغ گفت و بعد هم پشیمون شد و راستش رو گفت من من نبایستی اونو به اتاق هشتم میفرستدم ای خدا چه گناه بزرگی مرتکب شدم حتماً،, حتما دیو اونو تا حالا به قول زنجیر کشیده باید صبر کنم تا وقت خواب دیف برسون وقت به سراغش برم پسر وزیر یه هفته صبر کرد تا وقت خواب دیف فرا رسید اون وقت به سراغ دیو رفت و در اتاق شما باز کرد و بعد همسر و تمام اون آدمهایی رو که به قول زنجیر کشیده شده بودند آزاد کرد همه اون آدما از اونجا خارج شدند و فقط زن و پسر وزیر در اونجا موند پسر وزیر و زنش توی اتاق هشتو موندن تا شیشه عمر دیو رو پیدا ਕਰਨ اونا از این اتاق به اون اتاق میرفتند تا بالاخره شیشه بزرگی توجه اونها رو به خودش جلب کرد زن شیشه رو برداشت و همین که خواست اونو بشکنه دیو از خواب بیدار شد و فریاد زد. نه نه نه آه، نه نشکن نشکن که من میمیرم اما زن بدون فوت وقت شیشه رو به زمین زد. به در یه چشم بهم زدن دیو دود شده و به آسمون رفت و روشنایی همیه فضا رو دربر گرفت پسر وزیر با خوشحالی به طرف زنش اومد و گفته من سالها در دام این دیو اسیر بودم و الان از بند اون رهایی پیدا کردم خدا رو شکر خدا رو شکر که اونو کشتی و خودت هم سالمی منو ببخش من اشتباه بزرگی کردم از اون به بعد اونا زندگی خوبی رو در کنار هم گذرد افسانه ایرانی دختر هفت فتیرخور رو براتون نقل کردن بر از کتاب قصه ها و باورها نوشته آقای دکتر احمد بیانی. امیدواریم که افسانه امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار سهلا کریمی اجرا مهران دوستی صداوردار فوزیه میر دریکوند تیه كننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود